بالله بسم الله الن الله الرحمن الرحیم الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله علیه و سلم درس امروز ما برادر عزیز درباره انسان زیستان است شما می که یک شاعر چی میگه <تصفح> یک شاعر میگه که دی شیخ با چراغ همه گشت گرد شهر که از دی و ملولم و انسانم آرزوست میگه دی خلاصه دی روز یا دی شب میگه یک شیخ چراغ دادستش بود و گرد گرد شهر میگشت و میگفت که از دی دت ملولم انسانم آرزوست دی و در زبان، دری انسان های رمین که آناتومی وجود از انسانی باشه لکن وظایفش و فیزیولوژیش شیطانی باشه ظاهراً بسیار خوشت میه چهره بسیار خوب داره آخرین استایل پوشیده خوب خودا لکس کرده لیکن وقتی همرایش صحبت میکنی میشینی چری بسیار مقبول ولی صورت زیبا و اخلاق زشت و دد چی میگن؟ دد حیوان درندر میگن بعضی کسای هستن که ظاهرا چری خوب ولی صفاتش با چریش نمیخونه. صفاتش حیوان است مثل یک حیوان زندگی میکنه همیشه مادی جنگ و داوا و مقال است اینال شاهر میگه که دی شیخ با چراغ همه گشت گشته گزده ودت ملولم ازو انسان هایی که ظاهرا چهرهش انسان واره است کارای شیطانو میکنن و یا ظاهرا چهرهش انسان واره اگه کارای حیوانا میکنه از یا میگه بسیار خسته شدیم به چیز دارم انسان هم آرزوست یک کسی که ظاهرم هم انسانی باشه و سیرتش و شخصیتش و گبزدنش و اعمالش هم انسانی باشه این در درس امروز ما سرازیه است که ما چطور میتونیم اما تو یک انسان داشته باشیم که ظاهرا هم چهره انسانی داشته باشه و باطن و معنا و سیرتش هم انسانی باشیم به خاطر ازی که ما شما بتونیم خدا از این مشکل خلاص بکنیم سه زندان وجود داره سه زندان است اگر ما بتونیم از این سه زندان خدا خلاص کنیم یک زندان اینجاست یک زندان دیگه این سهومی زندان است اگر ما بدانیم از این سه زندان خدا بکشیم بیرون براییم از این زندان هم براییم از این هم براییم و از این هم براییم بالاخره باز ما میتونیم که در چوکات انسانیت داخل شویم. خب اینال گفت ای که شاید سوال بکنیم که این زندان ها کدام زندان هاست که ما باید خدا ازی خلاص بکنیم تا که در انسانیت داخل شیم. زندان اول ازی که است زندان حیوانیت است زندان دومش زندان شیطانیت است زندان سیام زندان انانیت است اینال یک انسان وقت میتونه که مثل یک انسان زندگی بکنه که عزیز سه زندان خود خلاص بکنه از حیوانیت شیطانیت و انانیت اینال ما باید صفات هر کدام از این رو بفامیم بفامیم که حیوان چی صفاتی داره که ما باید اصفات نداشته باشیم شیطان چیز اصفاتی داره که باید ما اصفات نداشته باشیم و انانیت چیزی که ما خود از انانیت خلاص بکنیم تا که از این قیدها بسیاری کسا در زندان در عقب میله های زندان حیوانیت قلفستن یک تیر هستن که در عقب میله های زندان شیطانیت بسته هستن و یکی هم در میله های انانیت پس ما چطور میتونیم پیادی سه زندان خدا خلاص بکنیم و چی رایی هست که ما خدا از این خلاص بکنیم رایی یه هست که ما بشناسیم وقتی یک نفر ویروس نشناسه چطور میتونه خدا از ویروس نجات بده. یک نفر میکروب نشناسه چطور میتونه خدا از اون مرض نگاه بکنه قصه که مریض میشن یا کامپیوتری یک نفر که خراب میشه علتشی است که او کامپیوتر داره لیکن ویروس ها نمیشناسه بنابر در کامپیوتر خود انتی ویروس نداره و یا یک نفر میکروب ها نمیشناس در غذای رمی خودکو میکروبی هست بالاخره مریض میشه. اینال ما بسیاری کسا هست که احساس میکنن که من انسان هستم لیکن دگرها برش میگنی تو انسان نیستی خب می زندان اول که حیوانیت است بفهمیم که چی کمال داره و چی کارهایی داره که ما خود از او نگاه بکنیم اول حیوانات چی عادت دارن؟ حیوانات عادت دارن اول که همیشه به خود نظر میکنن خودنگر هستن خودبین هستن خودخواه هستن هیوان همیشه آداز چیست که به طرف خود نظر میکنه خوده میبینه دگرها رو نمیبینه ما باید بخورم ما باید زندگی بکنم ما باید آرام باشم همیشه توجهش طرف خودش هست اما یک انسان کنتم خیر امت اخرجت لناس خداوند مطالبه شما بهترین امت ها هستین بر خود جور نشده نخرجت لناس شما خارج شدن تا که بر دیگرها کار بکنیم بر دیگرها زحمت بکشین دیگرها را خود راحت بسازین حتی وقتی که دعاهای قرآنی را میخونیم همیشه دعاهای قرآنی شکل جمع است تو نماز میخونی تنها هستی ولی نمیدی که اهدینی خدای من را هدایت کن اهدینی خدای همه ما را هدایت بکن نمیدی که ربی فیرلی خدای میگه رب نغفر لانا پروردگاه همه ما را ببخش نه که مثلا ما به بجنت برم میگه نهی باید کلگی بجنت برم دعوت برای چی هست میگی من دعوت میکنم یک کافر سیاپوز داخل قاری افریقا مسلمان میشن ما توانجا بسیار خوشحال هستیم یک کسی در بسیار یک جای دور یک زرر میبینه یک قادسی ترافیکی را میبینیم دلیل معتقدی که همیشالله تفلکاون جامور دارن شدند. پس حیوانی که به طرف خود سالم میکنه، به طرف خود میبینه و انسانی که میگه من انسان هستم، ما باید ایرانی را بکشم نفت عراق از ما شرم، افغان را باید بکشم موادی افغانستان از ما شرم، و باز میگه من انسان هستم. انسان نیست. او انسان است. با روح حیوانی با نفس حیوانی مذهرش انسانیست معنایش است اینه اسلام نمی فذیرن قید از در حیوانیت دوم چیز حیوان عادت داره که همیشه میگه بخورم بخورم من باید بخورم مهم نیست خونی کسی باشد مهم نیست گوشت کسی باشد مهم نیست جسد کسی باشد پوست کسی باشد حیوان عادت داره میگه فقط شکار بکنم فقط بدرانم فقط بخورم و من شم ای که از دانم از بغلای دارم خون سر کنم برش اهمیت ندارم. ای که او ایوان مظلوم بیچاری دیگره میگره تکه, تکه میکنه برش اهمیت نداره. ای که اگر طفل یک نفر در دستش بگه او رو پاره پاره بکنم برش مهم نیست مهم چیست؟ میگه مهمی است که من باید بخورم پس انسان های رشوت خور که میگه فقط ماست خوری دیگر رو ترزه شد انسان های که از خوری دیگر را تغذیه میشه انسان هایی که ظلم میکنن جنایت میکنن خیانت میکنن فقط میگه که باید ماده خانه خود غذا ببرم من باید گوشت بخرم من باید امای 20 روپیه گی بخرم من باید کریته مکمل انگور بخورم و ای که از کدام طریق پیدا میشه او برای مهم نیست فقط محتر باشه و ده او پایین شوامو و یک فروشگاه بسیار یک مارکت بسیار قیمتی و از چیزهای قیمتی, قیمتی بگیرم ای که مثلا تو همین پیسه امروز از رشوت گرفتی از کی گرفتی بر شرزش ندارم از این خاطر این فکر میکنه که من انسان هستم خلاص من پیسه فیرا کردم و من زندگی میکنم اما این اونوز هم در پشت میله های حیوانیت قلف است اونوز هم در پشت میله های قلف هست اونوز هست حیوانیت خود خلاص نکردن مهم نیست که اناتومیش انسانی باشه مهم نیست که قوارش قواری انسان واره باشه. یک شایر میگه مگه جمال الوش معقبه هنفوسه میگه اگر یک نفر چهری زیبا داشته باشه لیکن داخلش بسیار قبه حوزش باشه کمندیلن علا قبر المجوسه میگه مجاسی های آتش پرس آدت داشتن مردی خودا که دفر میکردن از سر از خوب یک دسمال بسیار زری لکسه من میگه مثل یک دسمال پردی دسمال بسیار گلدار و خوب و لکسه لیکن در کجا پردی شه؟ در سر قبر یک مجوسی، و او مجوسی چی میکنه؟ او مجوسی از داخل قبر آتش از دوزخ است. بدبختیه، ساکن ظاهرش اگه سال کنی میگه چه قدر لوکس است. بس اینکه بساری کار که قبرش انشالله لکس جور میکنه، داخل دوزخ هست و در بیرون مردم میگن واو، چه خوب و چه خوب و چه خوب گلکاری است. تو باید گلکاری خودت از داخل گلکاری باشی، نه از بیرون. اینا این مشکل دیگه است. سومی که حیوانات دارن همیشه و ما و اطراف خود میبینند ما خود من جوچه های کسایی که کتمه ما هستن فقط خدا منحصر در نمی میدانه که نمی قلاقه که کس که خلاص نمی قلف است بیان میاد نمی هستم و کس وی قلا نبه و ایمی فقط نمی فکر میکنه اما چهار اطراف ای دیگه قلاها دیگه منطقه دیگه مردم ها دیگه شده در قسی ازونه است انسان های حیوان صفت که انوز هم در قید حیوانیت هستند همیشه به قوم خود فکر میکنن به قری خود فکر میکنن به ولایت خود فکر میکنن به زبان خود فکر میکنن ما باید قوم ما باید باشیم ما باید از قومی جور بکنیم زبان ما خوب زبان است قوم ما خوب قوم است ما باید برای جا کار کنیم گروه های قومی باید داشته باشیم از سی مردم ها که وقت تنها بر قوم خود فکر میکنن یه از چوکات حیوانیت هنوز نبرامدن هنوز هم قید هست. قید زندان حیوانیت هست اما انسان مسلمان وقتی که که بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الحمدلله رب العالمین وقتی گفتی اوه اوه اینجا خداوند متعال برمه که من رب العالمین هستم رب کل مخلوقات و موجودات که در روی زمین هستن بروردگار همه هستم زمین مکمل سرمیز خود میبانم چون من یک مسلمان هستم که باید با کل گی سال کنم و توجه به طرف کل باشن اما اون کسی که میگه که تنها ما تنها قومم تنها هم زبانایم تنها قریمه باید بود چواد و دیگران بلاد پسش یا نوس هم خصلت حیوانیت در وجود ازی هست پس اگر میخواهیم که از زندان حیوانیت برایم از اندیشه های ایوانی باید برایم از افکار حیوانی باید برایم از خودخواهی و خودنگری و خودبینی و فقط بمون چهار طرف ما حول خود نظر کردن از این باید خودا بکشیم تا این که ما مثلا بتونیم که از شوکات حیوانیت که برامدیم باز یک مرحله پیش میریم به طرف انسانیت چهارم نقطه که حیوانات عادت دارن به خود دید خودم بخورم و با ما حول خود نظر میکنم نقطه دیگه شیست که حیوانات همیشه حال نظر میکنن حال فقط حال برش مهم است از فردا گفه نداره از آینده گفه نداره برنامه بر فردای خود نداره بنامه فقط باید بخورم و فقط بروشم احمیم روز اما یک انسان مسلمان با ایمان میگه نه برادر، ما باید نقشه های بسیار بزرگ داشته باشید. تو اگر آل احلف واره هستی پینجه ها سالبات دال واره میشی ست سالبات میم میشی آل احلف واریستی انترسه که قدقت این احلف واره همون تو خوب قدقت مستقیم راست این آل فیلان احلف واریستی پینجه ها سالبات اگر پاهمتون به اینطور هستی دال واره کپ کپ بسی ست یا یا میموری و یا هم در لسته دلسته مرده هست بران ما آدم هستیم به خاطر که از علف و دال و میم مراحل زندگی ما هست بن اگر اول من مثل فارستم وقتی که دال میشون باید فکر داشته باشن برنامه وقتی که میم واره یک مسلمان برنامه پنج هزار سال باد داره که کاری که من امروز میکنم کنم سال باد کله ما و شما شاید همین تعمیر باشه شاید همین صرف باشه شاید همه چیز باشه لکن ما نباشیم و 100 سال باد ما نیستیم و عمر ما و تو کلیچه وقتی که سنجش میکنیم آن سال 1300 چند است 1388 بسیار خوب در 1288 کجا بودیم وجود نداشتیم در 1488 کجا هستیم وجود نداریم پسایی سایی کنیم کل عدد که از دو سه چار در دو نبودیم در سه فیلن هستیم امی عدد که چار شد باز هم ما نیستیم پس کل عمر ما و شما بین دو و سه و است در دو یک هزار نبودیم وقتی که عدد دو بود نبودیم وقتی که سه شد هستیم امی سه که چار شد تاریخ ما و شما تیر میشه یا نیستیم یا در جمله نیستیم یا نیم باشیم و اگر باشیم هم در جمله هستیم که گپ ما خلاص است حالا که سن وتن ولادیا قال 20 باشم پوینترین سن شاید د سنفتم 20 ساله ساله باشه لاکن 100 سال وو چند سال ساله سي 114 سال چند نفر امیل د افغانستان 114 سال مو شما داریم. اناله یک مسلمان به حال نظر نمیکنن و چی نظر میکنن با آینده خود همیشه برنامه بره آینده میداشته باشن خب اگر ما میخواهیم اناله از زندان حیوانیت برایم از این چهار چیز باید خدا چی کنیم بکشیم خود نگر نباشیم بلکه جهان رو ببینیم دگرها رو هم ببینیم اتو نگویم که فقط ما بخورم نه خیر باید من هم بخورم دگرها هم بخورم دگرها هم حق داره زندگی بکنن دگرها هم باید باشن و با ما خود هم نظر انسان نکنن بلکه به کل دنیا نظر بکنن تنها با حال نظر خب این شد علامات زندان حیوانیت شیطانیت چی علامت داره که ما خود از اون اجاد بتیم شیطانیت همیشه شیطان عادت داره که مبارزه علیه معنویت میکنه مبارزه علیه معنویت میکنه اینال شیطان همیشه کار است که همیشه کوشش میکنه شکل از اشکال معنویت از انسان بگیره یکی چی قسم بگیره تو رو مسروف بسازن مقصد میگه که تو جوان باید با معنویت زندگی نکنی یا خنده سالار لوده خدا جور کنی یا مثلا دگلبرگ ها رقاصه ها واره برقصی یا مدرن واره و مود واره مثلا خدا مقصد به یک شکل از اشکال تو باید از معنویت چی شوی؟ دور شوید از این خاطر برنامه همه چنده 24 ساعت که. یک انسان باید از معنویات دور انسان های شیطانی شیطان های انسانی و شیطان های جنی فقط کارشان مبارزه بر علیه معنویات است تا که معنویتی یک انسان از بین ببرند دوم صفاتشون چی است که همیشه مبارزه میکنند بر علیه شخصیت سازی علیه شخصیت سازی مثلا شما ببینید نمی که تو منعیسی یک شخصیت خوب در جامعه رشد بکنی تو شخصیت وقت پیدا میکنی که فکر آزاد داشته باشی و کسی میتونه آزاد زندگی بکنه که فکر آزاد داشته باشه بسیاری کسا میگه علم درست هست. علم خوب چیز است وقتی که علم فکر نداشتی خوب عالم هستی سنف پنج ویدی انوز هم ساجق میجیدی و من که تو با شخصیت عالی زندگی بکنی. حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم شخصیت سازی میکرد. چی داشت؟ یک کسی بود مثلا جوانی را تربیت کرده بود که سنش 18 ساله، لکن شخصیتش 80 ساله. وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اولین سفیر اسلام انتخاب میکرد. مسابق ابن عمر یک جوان بیشتر کم سن بود. مردم تعجب کردند که چطور پیغمبر خدا میخواد اتی یک جوانی که سنش بسیار کم است، ایرا وصفات اولین سفیر اسلام روان میکنن. شرایط هم سخت است. ولی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمیگهش که تو سنت چند ساله هست. میگفتم درست است که ای جوان اگر سنش، ساله هست، لکن شخصیتش. از 80 ساله که برتر است شما ببینین مثلا شما سال کنن با شخصیت و شخصیت از صفه میده میشن که عروسی که اونجا دولو دنبگ زیاد است نه یک جوان 8 ساله رو نفر کش میکنه که تو بخی برعکس اون میگه اما اگر ریش اگرش سفید باشه بگویید که دستای خانم دختر اون که از کش هم نکرده تن پرده کاکا کینه خدا لاکن نفر چرا چون شخصیت نداره شخصیت نداره چرا ایناله زدیه پختگان نایت صدایه خروش از مردمان خام خیزد ایناله اونسان که خام است شاید 40 سالا شود اما با وجود ازی هم چون شخصیت نداره همیشه در جوش و خروش است از کثرت خامی است که در جوش و خروش است میگه دیگه شو تا وقتی که خامه چی میگن پلوق پلوق پلوق پلوق میگن ها آدمای خامم که ببینید فقط دانشام تو خودم کنترل قادر نمیتونه هم همیشه دانشام تو و منجینگ از کثرت خامی است که در جوش و خروش است چون پخته شد و قابل دم گشت خاموش است ایناله انسان های خام همیشه چی هستن انسان های خام همیشه در جوش و خروش هستند انو شیطان همیشه کوشش میکنه که شخصیت انسان متزلزل بسازه و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلام چی میگفت همیشه شخصیت میساخت چی قسم شخصیت میساخت مثل میصاب ابن امیل مثل علی ابن عبی طالب اسامه ابن زید میخواستن رهبری یک جنرال را مقرر بکنن که جنرال رهبری قوت های اسلامی رو در روم بکنه پیغمبرستم نزدیک که وفاتش است پرسانش میگن که پیغمبر خدا کی ببین جوان این جوان خود 18 ساله هست اسامه ابن زید پیغمبر خدا میگه این درست است اسامه ابن زید در سر اسف سوار از پیش میره و کبار صحابه عبو بکر و عمر و عثمان و علی و بلال و همهی کبار صحابه یاد پایین هستند و این سر اسب سوار است یک جوان 18 ساله چرا چون پیغمبر صلی الله علیه و وسلم شخصیت های ساخته بود که او شخصیت اگرچه سنش کم بود لیکن مغزش پخته بود گفت رزی که سن تو چند سال است. گفت رزی هست که تو پرسان بکن که مغز تو چه قدر است؟ کسایی هست که ریشش صفید است، لیکن مغزش خام است. طرز صحبتش ریشش صفید هست لیکن در بابالش خاندنهای نغمر هم مانده خدا شرمانده هست تو خود دلب گور هستی تو خود میموری تو خود خلاص هستی دندانات هم کلش است. تو رو میگه تو بخیزی کل جوانها رو گمراه میسازی ولی گفت سرازی است؟ میگه یک وقت در یکی از کشورها خواستن که دو نفر شخصیتشان معلوم بکنن گفتن باش دماغهای از اینها رو مورد مطالعه قرار دادن دیدن که در وقت مطالعه دماغها دو نفر شست ساله رو آوردن دماغهایشان مطالعه مطالع میکردن فاهمیدیم جان؟ این دو نفر شست ساله رو وقتی که دماغای رو متعالیه میگن یک شست ساله از زیر رفتن که در کتاب خانه ششتر داره شاگردان زیاد داره تالیفات داره چی داره این هم آوردن گفتن استاد ببخشی جادست شما رو بعد یک امید دماغ شما رو متعالیه خوب است بردن در لابراتار دیدن که این نفر خودش شست ساله است دماغش 160 ساله شده ببقیشین 120 ساله شده یعنی دو برابر عمر خود از دماغ خود کار گرفته دو برابر کار کده کار کده کار کده دو چنده عمر دماغ خود از دماغ خود کار گرفته آه ای هم یاداش گرفته به گفت یک 60 ساله دیگر را پیدا می منفتم که در دا دانو کوچه در دا دا منطقه که هستم دا دانو کوچه گرفقه می باشه و 5-6 جوان های لندگر همون جا وای تا که با همی که از جوانا قصه می جوانم که های جونی خدا میکردیم دیدم که یک باباگر قرار قصره که من جوان بودم میکردم میکردم خیرم گفتم تو بیا کاکا که, که تو نیم سات کار داریم اینه که بردن که مغز از موارد مورد مطالعه قرار دادن دیدن که خودش 60 ساله مغزش 15 ساله 15 ساله از این خاطر خوشش کرد همسنای مغزی خود که از بچهای 15 ساله و 12 ساله ایناله این که مثلا عزت پیغمبر سلام چی کرده بود؟ سیزده سال شخصیت سازی کرد. سیزده سال. وقتی که ازرایل علیه سلام آمد برش چی گفت؟ جبرایل علیه سلام اول برش دهر ذاتی پیغمبر بخی، اقرع بخوان مردم ها بخواندن تشویر کن نون والقلم و مای سرون خدا همان قسم بر برقلم و به چیزی که نوشته میشه تا که مردم علم بگیرن برازی ها فکر داد اندیشه داد از این خاطر کسایی بودن که سنایشان خرد خرد بود 18 ساله 20 ساله 22 ساله 25 ساله 30 ساله سنش کم لیکن شخصیت بسیار عالی داشت شما بی بی فاطمت زهرار را در یک پلی ترازو و یک میلیون مردهای امروزی را در یک پلی ترازو بانین. بی بی فاطمه زهرا شخصیتش بسیار گران بود. خانمی فرعون در یک پلی ترازو با مرد این مردها امروز رو کرد یک پلی ترازو. خانمی فرعون فرعون آمد و گفت که عزیزم من فرعون هستم. لباس کار داری دیگه مردها 5 جوره و بعد 500 جوره میرم طلا دیگه مردها که بر 100 گرم برام و بعد 1000 گرم میارم. میرم بسته طلا فروشی رو برات میارم. قصر که زندگی سکی کن لیکن خانم فرعون یک زن با شخصیت بود گفت رب نه من فرعون و عمله خدای من از این فرعون و از این عمل فرعون لجات بیتی رب ابن هندک بیتن فل جنه خدای تو بر برمک خانه در جنت آباد کن پیسه مال تلا دمشه نگرفت امروز بسیاری مردای ما شماستی یک در دلار که یافت چونزه ملاک میزنن بازی یک که ما با شخصیت هستم تو کجا شخصیت داری بی بی مریم یک دختر بود تمام علماء یهود بر علای قیام کردن لیکن هیچ پروه نمیکرد ارتباطش با خداوند مستقیمن ارتباطش با خدا بود اینال او بی بی که مستقیمن با خدا ارتباط داشت و این های و مردای امروزی که پیش شاد را میره گوش شاد شمشیرا جان ها من و چرسم خلاص شده تو برم یک بیستی بده. یه هم خوشحال هست که من هم پیروای کی هستم من هم مسلمان قرآنی هستم در حال که خودم فریب میده حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بی بی اسما انسان تربیه کرد که هیچ مرد نمی نمیکرد که بر پیغمبر خدا قضا ببردر در غار ثور بی بی اسما گفت خیرست م کشته شوم دو کمربند و کمر خود بسکت و وضعث تا و بکسیددی خوت پیقند بر سگوف گشنه باشم و ماششته باشه مزنده باشیم بانک م رو را بکشن راستن رفت و دو کمربند و بس تک زاد در تاریخ نام بیبی بی اسما هست. بیبینسی و زن بود شما سگین مثال های زن و مرد. زن بود که وقتی دید کمک های اولیه است پیشش هست هر مدیزی که از زخمی ها تداوی میکنه. یک شنید که مشکی شکرین صدا کردن که الان نمانین در غضی احاد نمانین پیغمبر خدا را که میره فورا نصیبه ام اماره خیلی از بین زمین چیزات شمشیر موجه بود مگر خسن بخدا هست که او کافر سر از بود و من یک زن پیاده بودم که از او شمشیر جنگ میکن یک وقت شانه شسل میکنن که 12 تیر و شمشیر در شانه خود خوردن اینال پیغمبر سلسلم کسایی را تریبیه کرد شما فکر بکنید مثلا امروز در کابل ما و شما جابرانسار و تمی منصار هست میرن در پیش خبر از یا ما ترک دنیا کردیم خب تو پیره به جابرانسار و تمی منصار هستی بله کوکی کی هستی جابرانسار و تمی منصار چرا همه در کابل اینجا, اینجا قبرش است چرا اینجا چرا در عربستان نیست ادیخم انگلیسی بگم یخ در کار پر توییین س اگر جابین سال تای انثال مثل تو آ رو دنیا می کرد و قرار نماز میخوان نماز در کابلثو به زیاد و زیاده برایطلهی شریف چرا باید طوللار رو ترک از آمد اینجا در کابل شاید شد؟ خ تر دنیا می کرد قرار در گچک ک میشش مثل تو آره. او خووج خیست و خاطر از که امروز موطوع و مسلمان هستیم، در این افغانستان کلمه می از خیرات جابر انصار است از خیرات طمیما انصال است از خیرات حضرت عمر و عثمان است که در وقتی حضرت عثمان و حضرت عمر یا افغانستان و ای ایران و یا کلش چیز شدن یا مسلمان شدن امروز اگه جمهوری اسلامی در ایران است از خیرات کی است از خیرات حضرت عمر است اگن ما شما نواسای کی هستیم؟ نواسای اونمو کسایی هستین بودا را ساختن نواسای بودایی ها بودن. لا امروز که کلمه میخوانیم امروز که ایرانی ها میگن ما جمهوری اسلامی میسازیم، از خیرات اونامو صحابه پیغمبر است که اونا خون خدا ریختاندن. سبزه خوردن، کاه خوردن، ماها پای پیاده گشتن تا که اسلامو بر ما و تو و امروز حتی قبرهایشون با عزت مردم، حتی قبرهایشون احترام میکنن. که تو جواب رانزار و تیمنصار است، چهار تا بوغایی برادامو در فیشت جابرانسان ما پیره وزیستم تو که پیره وزیستیم تو کی پیره وزیستیم او چرا خواهی جه شهید شد اگه او ترکی دنیا میگید خدا منطقی خود ترکی دنیا میگید. قرار او جشته بود حال فرق از بین او انسانه که با عقل و با درک خود درک میکنه و شخصیت داره و استقلال فکری داره برادر تا وقت که اینالله لا یغیی رو ما به قومن حتی یغیی رو ما به انفوسه هم خداوند میگه ما هیچ قومی رو تغییر نمیتیم تا که قوم خودش از داخل خودا تغییر نتا تو تا وقتی که خودت نخوای که تغییر بکنی فکر آزاد نداشته باشی به خدا که وطن آزاد پیدا بکنی اندشه آزاد نداشته باشی تمام روز خیزک بزن وقتی که فکرین غلام بودی اقتصاد هم اقتصاد غلام هاست فکرین غلام بودی اسکرت هم دیگرا برات میکنن میکنه غذات هم دیگرا برات تعیین میکنه لباست هم دیگرا برات تعیین میکنن حتی دین و عقیده و مسلک و مذهبت هم دیگرا برات تعیین میکنن فکرین آزاد هستی از این خاطر بسیاری کسایی که خوب دانش داشتن خوب عالم بودن فکرین غلام بودن وطن خدا فروختن اما کسای دیگه بوده که بیسواد بودن لکن فکر آزادی داشتن علم آم نداشته لکن وطن خدا نفر روخته سپایی گمنام اکثریتش ویسواده است که خیستن انگلیس ها را دواندن اما وطن فروش ها اکثریتشان چیستن؟ ماستر و دکتوری و دکتور دارن چرا این دکترا و ماستری داره؟ اما فکر نداره فکرن غلام است غلام حمت والای باب خارکشم که بار خارکشد و مننت اگر وقتی آتم به تاییر پرستان گفتن از خود کده بزرگ حمدتر در جهان دیده یا شویده یا گفت بله یک روز گفت چل تا شطر قربان کرده بودم چل تا شطر برا قدم در یک صحرا دیدم که یک نفر ریشتفید است بار خار پشتش است و میره نگه من برش گفتم که چرا به مهمانی آتم نرفتی؟ که چل سطره قربان کرده برو جه مردم کلوی کباب میخورن گفت هر که نان از حمت خیش خورد مننت حاتم تایی نبرد من از حمت خود نان میخورم میرم این پایین میکنم میرم اونجا نت سنان میخورم اما غلامی حاتم تایی رو نمیکنم بخو بخو غلامی از این رو نمیکنم من غلامی من از حمت خ... از او خاتم غلام حمت والای باب کشم. مقوله از او هستم که بار خار کشد و منت دونان نکشد پای پیاده میره لکن در معترای ها سوپرکشته غلامی نمی در موتر غلامی نمی میره لکن پای پیاده خیلی پای پیاده چهار روز چهار روز پای پیاده گشتم لکن در روز قیامت باز تو پای پیاده هستی ما سوار سوار هستی فراموش نکن این یکی خب این آل پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم مردم از قیدهای شیطانیت کشید بلکه شخصیت سازی میکرد و هر شخصیت شما لطفا امید سیرت هر شخصیت که از اصحاب پیغمبر آل بیت پیغمبر هر کدام میشه که شخصیت چه بخونی ایران میمونی که از برای خدا چه قسم مردم بودن ایچی قسم مردم بودن پیاوز مانتو شده بودن از زمین پایین شده یا چه قسم مردم بودن چه قسم یا شخصت سازی کرده بودن حالا ما بسیاری وقت‌ها در باری بسیاری از اینا تو تخیلی گرد می‌ذاریم والا منم غلام چوکیستم شاید اونا هم از خاطر چوکی مقال میکنن، شاید جنجالشون سر چوکی بود دی وزیر شام تو صدر هم چه تو چه تو شویی آمریکاجان بر من چوکی متنه قامه امام یک دو تا هم کاکا و بچای دو ساعت بتین من غلامم و تو نبودن. و اگر در چوکی خلافت ها و در اعمت ها و در چوکی های بزرگ هم اگر مگر بازم باز هم بسیار انسان های بردبار که لباس هایشان س می کردی تو بسیار ساده و آجززی چون فکری از اون اناندشی از این ها به خاطر ااع های الله بود ما مطرح نیستم. حضرت علی وقتی که امیر موومین انتخابش کردن گفت بالاا این بظور مردم سرمت تحمل کردن اگر این م کدام کانددیه؟ به کار من نداشتم من کدام علاقه مندی نداشتم اما ای که من مردم تا این کردن خواستن و خاطر خدمت مردم خلاص آماده شدیم لکن شما بخوانید پیش از امیل المومین شدن عزت علی و باد از او زندگی چی تفاوت داشت خانه شمو خانه خوراک شمو خوراک زندگی شمو زندگی اونمو آجیزی لکن امت و ایمانش اونمو ایمان و قوت ایمان از این خاطر اونا باز فرق میکرد چرا؟ چون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیزده سال درسی چی داد؟ درس شخصیت سازی سازی داد و اگر ما میخواییم که مردم افغانستان گمراه بسازیم باید سیزده سال درسی چی بدهیم؟ به شخصیتی سیزده سال باید جوان ها خنده سالاخ شوند سیزده سال یا باید لوده شوند سال سالی مثل رقاصه‌ها رو باید برقصن 13 سالی باید مدل شون تا که بازی این القی غلامی رو ده گوش رو خود کنه آلجدی نمونه یگان جونا گوشای خودا قار میکنه یعنی ای آغاز القی غلامی است که ده گوشایشون میفرته یگان جونا رو ببینید زنجیر انداخته یعنی گوسفند وارا در زنجیر دگردنش پارتو کشش کو آل این اینا آیسایسان الی آغاز غلامی و آغاز لودگی و آغاز بردگی است که یکی دگردن خود زنجیر میپ扎 چرا یک آن تا سلیب در گردن خود میپردن یک آن ببینی بی بی موهای خود جیچوان جور میکنه سه اومی کار که شیطان میکنه همیشه شیطان چیست شیطان حق را باطل و باطل را حق جلوه میدهد ارسان های شیطان صفت عادتشان چیست حق هم میگه باطل هست باطل هم میگه حق هست اگر نیش داشتی خواستی چیره رسول خدا آوره باشه سر تو فکایی میگن تو القایده هستی تو صوفیست هستی ملا شدی, شدی. چونی مدیریت مدیر اومی شیطان هست نه؟ مدیر اومی شیطان همیشه کارهای شیطانی میکنه میخواهی که حق ها تو خراب جلوه بده با باطل بر تو خوب اگه خیلی مثلا رویت خوب چپاتراش کردی خدا فقط دخترا رو جور کنه دیگه هم تو اومدی واو چی خوب اومد شدی والا چه خوب استایل داری چه خوب فلانی داری چی که پس اینو شیطان صفت از به خاطر شیطان عادتش همیا است که باید حق باطل جلوه بتا باطل حق با جلوه بده می خوام معنویات رو خب دیگه چه عادت داره مجلسش شیطونی نیست. شما داروسی شیطان صفت که بیری داروسیش فقط دول است و رقص است و ساز است ایت طاقتش نمیه ایت طاقتش نمیه فارق سنف پنج شد مجلس بگیده نی به فراقت دیگه شیطان صفت ها چی میگه؟ والا بیا دار بساز خود نمیشه او برش بگید او برادر ما بود سنف پنج فارق شدیم حالی محفل است ما تو باید شخصیت خودم تایی محفل مقالای خوب خوب جور بکنیم در باری آینده انجینری آینده زندگی آینده سردی صحبت بکنیم از مسئولیت خود رسالت خود برای دیگر ها بگوییم این میگه والا بیادر نیه اگر ساز نباشه من اشتراک نمی کنم ایچ من نمی اگر ساز میارین من پنی نفر پیست میدم از نیست؟ این ها کی میکنه؟ این رسم سر بعدی شما میفهمین نوات فیصد جوانهای با ایمان با ایم مسلمان و افتخار از برای انجینیری که پار که ما چه میکنم لیکن پنگ فیصد شیطان سفت مخالف بودن امسال افتخار از برای جوانای انجینری که دگر روز میکنن مسجد خودن مسجد جور کردن خودشان جور کردن خودشان دیزاین کردن خودشان خامه‌فرشا خوردن، خودشان مجلس می‌گیرن. شاید امیسل فای پنجدیه برای لاکن من سننه سنته حسنتا فلهو اجرها و اجر من عمل بها اله يوم القيامه. میا کس یه کار نیک را بنیان گذاری بکنه، خداوند بر ازو اجر خودشان و اجر پاداشیده تا روز قیامت برشونه. تا روز قیامت که اینجا نماز می‌خونن، اجرش به می گروپه. اگر امی گروپ ما سان محفل خدا اسلامی میره تا روزی که محفل اسلامی ما این میاله تا بال شایده 4 5 محفل عروسی بده میفته گذشته ما در خیر خانه رفتم اونجا جوان مسلمان بود گفت من خواستم که آروسیم اسلامی باشه چرا ما ده وقتی که چی است ما 3000 30 4000 خدا بر رقاصها و باز سازنده ها و دلچی ها بودون و کارای شیطانی بکنم و اون تا ایام رو خدا به معصیت خداوند سفری بکنم عروسیش چه شد همه کلی برش دعا کردن و محفلش از کل محفل ها خوبتر بود زیباتر بود با معنویت بود چرا؟ ای از زندان چی برامده بود؟ از زندان شیطانیت برامده بود اما بیشتری کساس مشکل است که او زندان خدا بکشن از زندان کشیدن کار هر نامرد نیست مرد میباید که چی کنه؟ از زندان خدا بکشه مرد است که قوت ایمان است که انسان میتونه خدا از این زندان ها بکشن هر کس نمیتونه خدا از این زندان چیز کنه بسیاری وقت ها زندان از بندی است مرد است که میله های زندان شیطانیت پاره میکنه و از این خدا بیرون میکشه و سر هیچ کس رای نمیزنه از از کس لای یخوفون فی الله لاومت اللائم میگه انسان های با ایمان قوی است که از ملامتی هیچ کس هیچ معلومات كننده انسانایی که در قید انانیت اسلال ما شما میخوانیم قید سمی چی است قید انانیت است انانیت چی مانه؟ یعنی خودخواهی انا من انا من همیشه سر خود فکر میکنم من بخورم من یک جای رفتیم استاد یه خانقاهی ما را میبینی استاد ها بفرمایید استاد قربان میک پایرت کشیستم سلام علیکم موندا نباشی لی سیستم استاد لباس رو می یه یه خلق از آلمان آوردیم آهو این رو می بینین از ایطالییاده این گلدان رو من می از فرانسا آمده آخر گفت گفت گفت معران ما فامیدیم خو بهچخ دری قید انانیت هستدگا همهشه خده آخر مفون ببشید ساجان این یه خلندقاق من کرده گفتم می بین چهل بعدلو می خریم چهل این کلتییم ی درشی که از سال میشه که می پووشیم یک چهار سالگاه ب چالله تاو میکل دیگه اونو ترمز ما هم گفتم تو بیا ترک ترمز چای و از یک ایره مجدد، ایره مجدد، ایره. گفتم من خانیم اومدی یک قسم ترمزو در لب سرک 80 اش حاضر پس ما زرو خریدی یک دفعه آیره مردکرم چی پس رفتیم کاراکتر میگنی خانانیت است این خود خواهی است بنا ان کسانی که در در غلام انانیت هستند در قید انانیت گیر آمدن همیشه چی میکنن همیشه از داخل گنده است از داخل چطور گند است؟ میری سهل میکنی سیب میخیری چارک سیب، از بیرون خوب سرخ و سفید و مقبول است وقتی که توتش میگنی در داخل چیست؟ گنده شده بسیاری که از بیرون سهل میکنی خوب سرخی سفیده کدگی خوب قواره است خوب چهره است خوب فلانی سکنی اما از داخل کسی کنی گنده است گپش خراب است از داخل پوده است الاخره همیشه متوجه مردم است متوجه است که مردم مرا بد نگوید خدا بد بگوید خیر است ذکر قرآن کار کنم خیر است اما مردم چی گنند چون همیشه با خود فکر بکنم که باید مردم به من چی میمانی داشتی چی عروسی داشتی چی هتل بلند بود چه خب مصرف کرده بودی از اون موتورای 8 متره و 12 متره چه خوب سوار شده بودی چه خوب خانم تدلوی سرک آرائش کرده کشیده بودی بازو فلمش هم میکشن باز میگن آه آه دیدین سه کاملا دیدین بیخی این کل کار رو برای چی میکنن بخاطر ازی که خودخواهی این انسان فکر میکنه که من آزاد هستم این انسان چی فکر میکنه فکر میکنم ما آزاد هستم کسایی که در زندان انانیت هستن یا چی دارن؟ همیشه اسیر زندان نفس هستن نفس امارا به سو همیشه در, در زندان فکر میکنم بسیار آزاد هست ما آزاد هستم و ای آزادی هست. در ای آزادی نیست که تو فکر میکنی. تو غلام هستی، غلام نفس اماره به سویت هستی. تو در قید نفس گیر ماندی. پس تو آزاد نیستی. کجای تو آزاد است؟ آزاد او کسی است که از داخل بتونه تصمیم بگیره خودش. آزاد کسی است که صلاحیت تصمیم گیری داشته باشه. لکن یکی کسی نفسش است. نفسش همیشه برش تقسیم اوقات میده نفس برادر شیطان است نفس اما را همیشه او تصمیم میگیره همیشه او ره برشید میگه ما آزاد هستم کجای تو آزاد هست آزاد او است که از قید و غلامی نفس خود, خود خدا خلاص کرده باش آیا تو خود ازی زندان خدا خلاص کردی آ یک روز احساس کردی که سر نفست آکیمیت داری، تو میخوای یک تصمیم بگیری و نفست نفست برات میگه، تو میخوای آرزویی اسلامی کنی نفس برات میگه، اوه خالق بچه چه مردم چی خاطب بگوید تو میخوای که کلاه سفید بپوشی، نفست برات میگه تو کت کلاه کلاه بپوشی بازی نفس این مردم تا چی تو چی می میگن؟ تو میخوای که کت یک فقیر کمک بکنی نفست برات میگن چرا برای فقیر کمک بکنی یک میمانی بکو، دو میماری خانواره بخوای؟ تا تو زیاد نام بکشی این که میگی من نام بکشم چون تو نام بکشی اگر غلام نفس نباشی این طرفه حکایت است دنگر روزی قضا مگر سکندر قصسی سلطان سکندر رو میکنه میگه این طرفه حکایت از بنگر روزی زی قضا مگر سکندر میرفت و هم از سپاه با او آن حشمت و ملک و جاه با او ناگه از خرابهی گذر کرد پیر از خرابه سر به در کرد میگه سلطان سکندر میرفت و از یک خرابه جدید که یه آدم ریش از همو خرابه چیز میکنه پیر زی خرابه سر بدر کرد پیر نه چو آفتاب پر نور پیر میگه او آدم بود مثل آفتاب بود چی بود نورانی بود در چشم سکندر آمد از دور از دور سکندر اجازه پیر چی میکنه اسفران بدن مغاک چون گور اس به خدامون طرف برد پیر از سر شغل خود نشد دور پیر گفت که نه نه نه ما حرام شیشه اج رای نذات که پادشاه کی است ناگه سکندرش به صد خشم سلطان سکندر دخلش اومد گفت بهری چی نکردی احترامم آخر نه سکندر است نامم چرا با من احترام نکردی؟ بگه آخر نسکندرستم دانی که منم به بخ پیروز تو خبر نداری که من بسیار آل بخت محالیست فرق همه عالم هستن امروز من پاچه هستم فرق کل دنیا هستم دریا دل و آفتاب رایم دلم مثل دریا وارست فکر مثل آفتاب است فرق فلک از و زیر پایم ایره سلطان سکندر می پیر از سر شار بانگ برزد دین حسین ستاشت گفت این همه نیم جو نیرزت نه نی فرق و نه روی عالمی تو تو نه فرق عالم هستی و نه روش یک دانه ز کشت آدمی تو دو بنده من چاکو درس برش می داد میگه دو بنده من که حرس و آزن حرس و خودخواهی و انانیت است دو بنده ای من که هرس آزن بر تو همه آمر سرف رازن با من چی برابری کردی تو چون بنده, بنده منی تو تو غلام غلام مثل تو علامتی بر ما گپ بزنه که ما شطور هستم این بسیاری کسایی که در زندان انانیت قلف هستن یا ظاهرن فکر میکنن که حالا ما آزاد هستم در حالی که آزاد نیست در زندان انانیت قفس پس ما باید این صفات ها رو از خود دور بکنیم از یا خود خلاص بکنیم تا ای که از قید انانیت خلاص شدیم خب وقتی که از ای خلاص شده، این خلاص شدی این حال در بین در خانه انسانیت در چوکات انسانیت داخل شدی در چوکات انسانیت چطور میفهمی که تو داخل شدی وقتی در چوکات انسانیت داخل میشی که اینج کلکین های داشته باشن کلکین از ایمان ایمان 100 صد ست قوی داشته باشی کلکین داره خانه انسانیت کلکین از باور کلکین از تقوی آیا تقوی داری کلکین از اخلاص کلکین از تواضع، کلکین از محبت کلکینه از انسان دوستی البته نیست که بگی علامه صاحب حقوق انسان ها مراعات می کنیم لکن تمام روز انسان ها را بمبارد و بکش نه انسان من حیثیت انسان دوست داشته باشی و به خدمت انسان باشه کلکینه از ایثار کلکینه از فداکاری کلکینه از خودگذری در یک جنگ داوا آیی تو از خودگذرا سی از خودگذری که یعنی در ناقی که حیوان وارو جنگ نکنی در صورت که انسان اینی کلکین اینی کلکین های ایمان باور تقوی اخلاص دوستی سمیمیت محبت انسان دوستی قلب صاف قلب پاک عدم تکبر تواضع از ار قدر کسی سکر پایین تر از با امرای زیادتر سمیمیت در اون صورت ایرم دانش آزادی فکر آزاد اخلاق این کلکی است که چهار اطراف انسانیت ها گرفتن و وقتی که اینی چیزها رو انسان داشت باز این بلاخره چی میشن همه ازیا مصوی به چی میشن مصوی میشن، به یک انسان مؤمن بلاخره تو انسان مؤمن میشه انسان مؤمن الگوی چیست رسول الله صلی الله علیه اینی انسانه که انسان مؤمن است الگو یه است دیگه الگو نمونه رهبر کسی دیگه ندار وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اصفتان حسنتان لَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ همجید. کسی که ایمان داره و کسی که خدا را می‌شناسه رهبر خود رسول کریم صلی الله علیه و سلام اگر و همیشه شخصیت خود از شخصیت پیغمبر صلی الله علیه و سلام آراسته می‌کنه ضرورت نداره که غلامی کسی دیگه را بکنه یا رهبرش کسی دگه باشه وقتی که انسان که قرآن کتاب شد و محمصه سام رهبر شد نه با کتاب دیگی نیاز پیدا میکنه و نه هم با رهبر دیگه زورت داره و نپشود یا را میگذاره دیگه که تمام روش پشت احزاب رو را میگذارن خاطر ازیکی برادری نیست دوستی نیست همیت نیست انسانیت نیست انسان دوستی نیست محبت نیست صفا نیست عرامش نیست از این خاطر آمیشه بر خود با جور میکنند مثلا یه گروه خودم میزنم هم دو گروه پام دو زام برای باز داده دا گروه پی زنام بازش دو زم برای باز دو دیگهش میره بازوش... همیشه اما یک انسان مسلمان همیشه آزاد زندگی کرده آزاد با فکر آزاد با وطن با آزاد با اندیشه آزاد و با بالاخره رهبرش رسول کریم صلی الله علیه و سلام است و در مشکلات زندگی خود قرآن و سنت اساس قرار داده احتياج هیچ کسی دیگه نمیشه و السلام علیکم و رحمت الله و برکات <تصفيق>